ت کن نخوری؟ یه چندل خب شاعر با شعرش به جو بشه. کام امتحان. تعلق. همچه بگیرید. خو آره آره خوب شد گفتی؟ ای پس باس من این آمه دارم آمه جید میره اونزا بقم بریم او یه سری با بزیم چرد؟ این طرق هم بش باش به لغ افتاده فقط بگیم از خوده ده نگاه داریشو بکن چرد آمه ده خودم از صرف از من رفت مجید بجید خدا چون دل نالَنمونه غمِ هم چون غمِ هجرانمونه اگه دریا اگه فدیده ی داشتم بساده چون تفل باد خو درد هجرتی نش روز گاره خداوند بفرم هر یاد دلوم راست کسی بی کس توی ماشاء الله. سلام. فیل زرد زاد شبه آرینو خوچی در چین چای لپ ماش لوبیا شدی. انشالله که نسیانی میخواد. موسفرد نبوده گفتم که مصمو خانم مریضه برم یه سرش بزنم یه سریم به فامیل بزنم و بیام بله قضونه برم یه سال و ایدا بینگر نرم چو کاف کنم نرم میپوسم قضونه برم که بریم نانی بردوشتو بود نانگوشت توان بیران هم می‌گویم می‌خواهم تو آش می‌گویم نمودن منشته این لباس چیست که برای سینه را پول میذارم به این دلیل که من بسیار بدرستی و آبش نزدیک بذار دست کن گندون برای برقا بخیر الف برای او مزیت <تصفح> می‌شود بخیر روز سرورم آبش آن است کن آب هوا گرمه با است کیه من از اون برسه تو پول بده تو زمین بسیاری تو مرد شده دید که تو خود پول در میاری تو باید به من پول بده بیچاره بی هزار تا گرفتار یا خواستم می‌خوام نمی‌خواد بکنی میری خونه خار نارو شامیده همون میخوری. هم جو میخوابید. دست دستی هم از بالای خارج میگیری، لباس آدمه میگه کسی شده، شد میگه خارج بشوره. تو کوچه و خیابون اینا هم چیز نخور. بیا با دکترم بده روزی دو سه بار سر بخونه بزن. ملاحظه آقا کمال هم میکنی که زبونش به سری خارت مسلط نباشه. ای ای. میشه چه تا قصه بودس؟ پس مزار تا قصه من دو خلاص قصه میگفتم. من بهتون میگم بیا بده، بیا به بی هم گاز بی بی چون می مجید الان می آم ای بی نبا مجید, مجید. سراجی چه هچه هچه هچه منو ملازا کامالو میکنم من یه پنج دارد دا دا دا این چویست جنسی که آرده یا ما شخصست اینه صحبای که ما شخصست چیچه آرده خیلی خب من یه پنج دارد این براد رو اشتت سویست همین جاست جنسی صورت درد یه یه فان سپورتو. آقا اینجا تا من بخونم؟ مش اشتباه. یه به من. شارکادم ورده. این دوامم گام من بخونم؟ ببین من آقا چرا خودشو قهر کرده؟ یعنی آدم بلوش ازای بلوش ازای بلوش یک از اونه دیگرم؟ اونها چه منطق از ما یک من؟ این چطور؟ ده؟ پشت دست دستتون در نکنید، خیلی ممنون، برمیگردم. خداحافظ. کسی دیدی هنوز نرفته؟ ماشاءالله. آقا geldi biliyorum. آله. هفته بالا چکار؟ کار دارم، کار دارم. من رفتم دیدم شو. این به جایی نیست که بیایید دیدید و بعد درقی کنی؟ ببخشید، ببخشید. اخره، اصله مارگو زندگیه، یه بده منالی. ماجیس. میشه منظورم زندگی به درد کیه؟ هست، نه می‌گید تا اون بسره برای کی حس نخور من هستم. یبی، یبی، به محسن خانم سلام برسون، به حسینم سینم بگو، تا برسونی بیاد یه سالی. سینم، یبی. کمال ببخشید شما بی کتابی بی نوایان دارین چی, چی بی نوایان kasab yakar diye nazar abcam televizyonu taş böyle çelin az terden Bu sana. Ne şey bu ko? Ya sala. Vazam gibi laç. Laç. Niye ya la sala? Laç da. Ben giderim ko izni کتابی که به در تو بخوره نداری. نداری؟ یعنی شما از و ویکتور هوگو الکساندر دوما و جورج اورول و و و نداری؟ حالا شما چی 355 8 ب. فعلا مواظب باشی او؟ بله خانم ما عادت کردیم که موازبی کتاب باشیم منم عادت کردم به همه بگم مواظب باشه. بله ببخشید خانم میشد این آنو من ببرم خونه بخونم چید عادت دارم بلند بخونم خب اینجا مکنی میشد بلند بخون. ببرم خونه تا بخونه تا عوض که نمیتونی کتاب رو برداره ببری همینجا برو بشی بخون برو برو آقا همین دوتا مونده بود هست اینجا نه برای شما میخواستم آقا جون نهار نه من میرم آقا ببخشید کتابی بی نوایان دارید؟ نداریم دارین؟ نمیسندش کهیست ویکتور دروگو ای درستیست داریم بی نوایان یا نه نمیدونم بابام نیست بی نوایان سیه روزان تیر بختان گرسنگان بیان بیاین هیستد تومن هیستد تومن ای بانوی خوب الان ای بانوی خوب کتابدار. چن استی دم مدم در فکر دینام اما نده ند اما نده ند کتاب نمیخونده میخونیم و بیاموزیم نکات تو چند بسیار اسم شما چیه مجید مجید مجیدش مجید شو و خطات و دانا مجید عهد دانش شوف شو نامبا آقا مجید نمیتونم کتاب بدم ببری یه عکس میاری پرستش نامه پر میکنی قبض گریز پنجاتوانی میاری کار توضیحت میگیری خانم آخه حیفز یه کتاب اون زو آتله و, و آتله خب این من ببرم خونه عکس فوتوکوپی شناس نامه پرستش نامه قبض کارس چیز آقا مجید. ثنیا تو برو تو شو یه دست مزنم تو ورق یه ورق مزنم تو شرم چوب شده سینا تو عکس تو تو مثلا چیکار می‌کنی اختیار اختیار دارین بفهمم مینام راستاش کن آقا کما راستاش کن تو به یه جایی برسه میخواستم 750 تومنت بدم راستاش کردم 800 تومنت دادم یه ذره دوره بلی خواهرتا بیگی. سلام آجی سلام آجی خسته نباشی دست درد نست آقا کما رفع انجو منا منم میخواستم باش بره خیلی سب کرد نهی مگه چی خودش رن که خواست خودش بی خب باش باشه بروی خسن... برو خدا به همراه بروی آقای فیدانی سلام و مالیکم خب تلاوت نیم نه باشید افرق. این کبوشه هستن سیه پنج نمانست فیر نمیدم اغازم بیجو باید بگوی نمیدم ولی من دادم رفت این تیره دادی رفت عزیزی من نمیتونم به این قیمت بدم بیجو بابا آقا کما شما فکر میکنی که این کتاب مشتری داره یعنی مشتری با... یا فکر میکنی یکی مثل من و شما میاد پول بالا این چیز را بده یادم دست دستگاه دولتی بود منم دادم راحت. آباد زمباره همین اسمی جامنی می دم در زیرانجی می کنی که تابه دولل پانه دختره اون علی باره من دری سری پولش این, خبرام نیست فکر میکنی این خبر آم نیست. میکنی می کنی؟ نه این خبر آنیه. نیست خبر. زده جزء 23 میشه. چه؟ بابا چرا هولی؟ دو روز دیگه پاس میشه. بابا من حالا پول می من خودم شاعرم. به من گفتن بچه تو اینجا ران نده. به چامیران تو اینجا شروع میکنه از شما دردن کنم یعنی من به چند شما به آکمال فردنی بکنم میاندید من کارم اینجاست جامم اینجاست وای نستم چه می‌ری حالا شما؟ فردا پس فردا یه ما چه رو؟ یک روز صرف بستن دل شد بین آن روز دیگر به چندن دل زینا آن گذشت در جلسه قبل ادهی از دوستان درباره این شعر مطالبی زد و نقیز گفتند آقای فریدنی در یکی از کتابهای قدیمی نمیبینی؟ آه؟ آه نمیبینه آقای فریدنی تشکیر اینجا برامون نکات را میخونند آقای فریدنی تشکیر جناب آقای سردبیر آیا شما مسئول نیستید که یک شاور این مملکت را به خانه خود یعنی انجومن شاوران راه نمیدهند؟ بله آقا؟ بله اصلا که نهاری؟ چه دهست؟ که بس خدا بس سلام سلام آمان ببن چه دونه؟ چشی کمه ها بیاده چلی؟ ایش دونم ها چه زمان بسر داردن؟ ایمونم اون درازی؟ ایمونم ساکه تا بیمیاده و باید جوی کنی من حق بود به توی زادتون خرجیزی یه دیرم بیا بخور بیچاره اگه زیاد بخوری زودی چاک بوشی زودی هم میکشنده آقا مدید به این زمان بستا برسته دشون کلافمو کرده چش دست نزنی آن گه دست نزنیم چطور ببینم اگه سم چاک شده سنم دست نزنیم چمش که نیمیان چمش میان بَرَدگی ای طرفا پیدا داشی ماه آره دل نشین آمد سوی شام از خرد بهاره یاره زوبر سایه بکش چون نسیم نو بهار بر کن گذر تا <تصفيق> که گ کلبه یه ویران من اسغر خوش شوالت دل در این عالم نباشه آقا مجید اگه باشه به نیادم نباشه دیگه خوش شواله. نه شعری نه عکسی نه مجلی نه کتابی نه آرزای دور درازی اسشا حصلش جوردن نمیاد باید بچه آدم پول داره که فقط خرش کنی آر با چه میشه میدونم نداری حکوم خودت هم که آره دیگه خازه <تصفح> لبخن <تصفح> خواره هم که هم نمیده بی به اسفارش کرد که نده اشکال دیگه هم داری خیلی عجل داری هر چیزی که میخوایی میان فوری فوری به دستش بیاری یکی نمیشه یا اون کتاب دست سمودا خوندم ولی دست همین چون پول نه یان والجان چه می توانست کرد بینوابی فرو گرفتش بندکندک چیزی نمیخوامین؟ کاری ندارین؟ نه تو آوا کمال بودی عجی من ها تو آوا کمال مایی نمیخوایش تا بخوری نه دیر نشده خدا خدا من بریم یاد من بریم یاد نمی‌شه. خیلی خیلی هم خدا. صفحه 25 شما ببینم خیلی ممنون اناسی سر ما نهی شده شرمانی دردار که فی بار نمیشد براد نمیشد آنچو شکلی باهی دارد کناده زیر از پرمیننست من مردم پدید میکرد از عشقا همیشد براد میرد و باز براد شد که ارد کمک بیتره هست را باز می کنید هستی چدای اطراف نمی می و مسافران که در حال قبض شدن است حتی نمی کنم سر در عظمت هم باد نقطه نیست فریاده ی اتامن... اطرافی باشه. باشه. باشه. از اقا سرام نکته از این دونه ما قیابو یه اونجا میخواستم از اقا از اقا باشم مشخصه. پس چی بیروز دادم بدون من اگر دانه ازنی از زیر آسیا سنگی افکاری داشته باشد بیشک همچنان فکر خواهد کرد که جان بادم دا... چیزها خواهش با میتونم بابرشمان شما بابرشمان نداشت با شما ندارم نه یه چیزی به خود آنی تازه بنام. نیست چیخ کوزه کوزه شد چیخ آلا آلا اون آبشون استادت نیست دنبالت چی میگرده توافقت ول هم <متصف> آ بابچه تابی توافقت چکی هم صدا کی شهید ساده خورده گذاشتم و دام را تابی توافقت آلا نه چه نه کت تا... و نیست نیست نیست نیست نیست نیست نیست چه کونه من هست چکی آن خورده نیست نیست مجیف آلا اون کتابو که صوبستو اتاق آقا کمال دارداشته چیکار کار کردی چی؟ کتاب م. من میدونی لا کتاب چی چی بوده؟ یه چی که خورده هزار تومنی تمام زندگی منو مچک بوده من آجی من فردا نه فردا که چومست پس فردا ایداده ایداد مجبورم بهش بگم امشب تا صبح خوابش نمید. بالش نه من من کی تو او دادم به کسی. تو تو چه اتالیتش به کسی که دفع دوباره باشه. کاری و جیده درسته؟ کاری و جیده کمار بابا دون صد بار هزار بار گفتم چه خوابا محمد هردی تو نمیخوره اصل اینجا چی کار داره این بسره حالا بگه چی جو شده کار شده چی توبی به زین که دلیفتاریت بهمی کنی همایتون رو کنی من پوست کس کنش می کنی چه قرار بابا شده فرار کن اگه تونست فرار کنه خدا گفتش جا من امنید زندگی من باید امن باشد خون من چار دیواری من باید امن باشد چنیست افره بزنی چی میگه دیزا. پسر بابا این برادر منه که من میخواد میگه این دیگه خونش رو خوش نشونش بدی به خدا خیلی بیان تاپی کمان چاو من کوجه ده توخ تو تین شای شای ازار ازار باید باید با با چه که شیستن سیفن ازار تومن نباید ببنمم کیتا شده سلام سلام نا دست خود داریم دست دسته ها چمالتر آنچه سپه سپه من که تانه بودم خب معلوم آدم تانهی یه وقتی میتون من که به من که به ترسی هور به رت میداره هر چه هم خوردی؟ حالا بیزر بهت کمک کن. کنم با هم های من کجاست؟ زندگی من کجاست؟ چه چه پیدا نشده همین آجست و همین کاسه عصم شکار ناب کن چک اکتا یادت باشه دلم خواهد سوزبار بهتری بوده عشق میگوزی قصه شیر نظرها شرخواد کم نبود و مسرنگ از گوه سخت بردار شما برو چرا خوردم؟ عته میشه. مردم. من بخور. که چه این حقی دارد آیا چین رفتار بیرحمانه ای از طرف اجتماع رفتاری خارج از حدود انصاف نبوده است همیشه هم این موجودات زندگی کوچک، این مخلوقات خداوند بی پناه بی پشتیبان و بی راه نما در چنگ حوادست کار را با محاکمه خیشتن آغاز کرد جانوال جان زخمی هل بیا بری در سرطت جان جانوال جان خود میداند که فرد بیگناهی نبوده است که برخلاف عد تنبیه شده باشه او اعتراف کرد که کاری بدی کرد هم اما جان, جان مستوجه به این عقوبتی نبود اما جان, جان مستوجه این نبود سلام واش همسر چه وقت خوابیدنه؟ السلام علیکم مادی. سلام حبیب. کی قرار داشت؟ شما برا من مهمون اومده. نه بابا این مجید همکانی. دود می‌کونی چای تو. چای اندازه می‌کنه شما بیات. تو چه درش شار گلی. <تصفيق> ای همدمی منزل من به اینا که دوره من به زنده مقام بگردان جواماست قابل میدونم چه نشونی خونش می دروازه بیا تو خانم کتاب دار نیستم نیست سیست آخوا من یه یاد داشتی خیلی مهم ها کتاب جاگه داشتم وقت باید میدونم جمعه سا ولی خب باید پیداش کنم بیشین یه چای برای من یه چای برای خود بیشین بانوی خوبه چتاب دار جمعبا چه نیمیاد چتاب کنه عزیزم کارش مقرراتیه راسی بقیه شعر چی بود؟ شعر نبود همطور تو به دایه گفتن اتباقا شعرت خیلی هم خوب بود خیلی هم قشنگ بود خیلی هم خوب بود شما اهل شعر هستی بله تو اون هم کار مدونم خیلی هم خوبه اطباقش ما کاسب هستیم برمشید این خانمی کتاب دارد دختری شما دختری منه اخ بعد خواهید اون چی کار نکنیم من؟ صبر ماجی ماجی سفارش شما رو به دخترم میگه بله، میباله ولی خب اون موضوع رو نگوید بین خوده اون میمونه ناراحت نباشید اسخن اسخن اسخن ام ش میگی؟ هیچ. ای. چرا انسما جال نایمدیس بتوان میومه؟ شما برخیندشون دیو چردن. بفرم بفرم و تا کدش نخورده. بفرم. بس ها بس ها با صاحب صاحب این طورت این مبلغ چه کار دو مستود کن اینشون نیسته شیطا تروی جمع نیاد چه کار بنام اینشون نیاد کار برد منطقه پنجشنبه آخری وقت یه دختر خانمی نوجوان اومد گرف برد عزیزم نراحت نشو خانم. دخترم کمی کن. خانم شو شون نیمیشونسی نشدش نشونی نداریم سلام سلام من زایدارم بله بفرمایید. بخشی با کار داشتی. بله. است تو کتابخونه کتاب, بله. بله. کتاب, کتاب, که... کتاب دیگه. مریم. بله. سلام. سلام. کتاب چه اوز شده سو کتابخونه. ها اون کتابی نوایا نه نبود که یک کتاب بود. بعد بابام دید آدم بود. بود. کجا رفتند؟ کجا رفت ربات ربات آ رو واخه چی تو می دن پیداشون کن جوان فیلم نردری دارن راحت میشه پیداشون کرد جمعی از رجال و بازرگانان و بزرگان و صاحب منصبان بلف زوخته از این خیل پرومایگان ویسر و پا که به نام شاهرو ادی و, و هنرمند در نظم جامعه خللی ایجاد کرده شما وزیر ازم برای صرف این سر این زوخته من کارش هم او باش چه کرده ای قبل از به سلامت اقداماتی شده ولی هنوز بوده زودا آقا شما چی نکته استتونه کنم سه روز اسمم در خونه این بنده خدا دیالوگمش بدم و من دو شبش در خونه ایشون ساعتی 10:12 ایشو و یک بعدش شب که دیالک بسونام بود واسه شما صرف شما صرف نشده شما چه خبر دره کوردیاکشکو دارد دارد پس حسکو شورکو حالکو آقا ریحانی من همون در تشمه شما میبینم آقا دعوا گفتم شما یا تاکسی کنن نکردن شما یا از سر میز میفته تاج میافته آقا از ساعت باست؟ نه خان؟ به لبخند بله خیلی خیل دمی چه؟ <عصدق> <تصح> تلواری یا کف کاتونی آدی داشت. بابای نامش پی داشت. از این کادر ببین میاد یوم بچی. کمی زنده هم هست. زود بسیار دیره. آغازیم. شما چطور سه همدانه تو شاه وزیره وزیره بیانات ایشفرج با هم نمیداشتم بودونو شما از ایشون بعد از دیالوگ به خاطر دیالو داشتم حالا زافه کردی دیالوگ زافه کردی من دو سال تحقیق کردم که دونه بدونم دیالوگ رو نوشتم مگه اعلی چه دیالوگ نوشتم آقا ریحانی آقا من این صحنه رو خاک وسانم میکنم شما برو این این شماره بردار دیلوکا شاری صفه دیلوکا بازی روی صف بنویس بده دست آقای حسین بعد حفظ کنین فیلم شماره اسم ما میگه فیلم شماره اسم ما میگه فیلم نام آقا تو ماشینه بفهمین برین اونجا بشین تو ماشین بنرسین آقا برین کنار خفمون کردین چه خاک بسرم خوردین آقا یه چای آدم یما من خطتم خیلی خوبستا راست میم من کلاس خوش نمیسی رفتم او به این کارم خیلی علاقه دارم سریف این برداریم خیلی بودم حالاگه شما کار دارینده برین سری کار دارم من جواب رو دو خطم خیلی خوب است. خب دیو. شاید نیستم. یه لگو شاید تو این صفه. یه لگو بازی رام تو این سفر. منی سیگار اینجا کجا میفوشن؟ سیگار شما از همین در به این بیرون نخواد دستی راست همطوری سب کشیدن سیگار میفوشن برو برو کات کن خب با باش اینجا چی کار میکنی؟ اون آقا با گفتن که چونکه من خطم خوبستا با بنیمسیم بیا پای خوامش نو بشورم چیزیست من کار دارم باید دنار بنیمسم شما بشورین من همینجا میشین چه عجب شما ساکتیم به رو جه ها شنبه شمزه هم عجب صبح برخواست سوا شدیم به دل آولت و بلدی سلطن میردان بی بی اومده است بی بی؟ بی بی که زندگیم به شد سلام بیبی <تصفيق> بی رسیدم بخه ببین چه زندگی واسه خاره درست کرده ببین چه به روزش برده ببین چه کار میکنی تو من چه جولی دیگه میشونم تو رو آقا چمال لگاه کنم ببین هرچی همی دست خودت میکشم تابا بیوی بی جون میکی توفت تا الهندی آقا چماله برای قربونت برم آجی پیداش کردی؟ بل چکلاش نیست نه؟ شهرمانده آجی پیداش بکنیم کمارو بات را تا دو چکا تو بی, بی اگه اون سعی دنیان باشید پاید برم پیداشم بکن سلام سلام, سلام خانی به بخشی باید نومده بله اگه میشه بگین یه دقیقه بیان در میده بابا بابا بابا بله. درمی در کار ادوم دارم چی هست هم به سرکر ادوم گفتم که تا عوض شده تا اینا از شما همون اقوزاده این که کتاب تو ماشین به یقما بردین تو دردی سران مکاما پاک این کتاب چیه؟ چکه من از در کتاب ورد داشتم حالا آمدت اون میارم خدا خیرت سلامت باشی اما شما که اهل شیعه رو بناریم عدب رو دوست داری. قبوله این باید بایش برایم بایش همهش سر درد سر درد سر مریم فخری بیای که بابا این چکو تو نهیدی؟ چر، چر، چر. چک چک چک چک نه نهید بند آز بند آز تمامه پیداش نکرم با تشمه روشن؟ تشمه بی بی روشن؟ گفتی این انترشون چه دست سگالی برای من به آف دادست؟ چه بلایی سرم آورده؟ اش گفت گفتی. تو گفته باشی نگفته اجرم گفته همچی گفته که آف تو دارشون تکون نخوارد من پرمیشت میشناسمه. همیشه اون انتره از لزمان من همیشه انتره چی هن؟ اون پیرزن بدبخت چی کار بکنه تا چی کار بکنه بله اون پیرزن بدبخته اونا بیتاره و درموندن در من خوش بفتم بازنی مثل تو اون خود بازه این من میخوام ببینم اونی آدم زنا چی کار تو کردن چی, چی کاریم نکردن میخوان دست گرم برم خب نده شون به خاطر دست گری که ماغازات انتراشون بابده دست چه بیچارم کردن چه مجبور شدم قرنو بره فرس کنم چه خسارت بدم چه از جلی سمرو چه یک قرم پول دستم نیست کمان کمان برو به خودشون بگو برو فواششون بده برو کتکشون بزن برو, برو آتیششون بزن بابا ده یه وقت میفته تا میمیره ببین ما الان میام اینیگه میمیره من برو برو ببینا برو ببین داشی من اینجا یه کار دارم شما بید. کار داری برو برو, برو. چکار کنم از دست برو که جونم از دست خلاص میشد کارو بذارام برو به کارو ببره برو Vivi... این مجلد میبینم بیونی منم بیونی این شعرم شما الان رو بروی یه شعری بایی که هم شعرش هم عکسش تو مجلد چاپ شده است. خوش شعاله خوش فعاله. بفنم، سلام برسون خودم آقای محترم، ولی نه، این پولش این هم شما سبب 25 مطالعه کنو افقای از خان، باشه اما در از خوابی دارید در او را اینداخته از قایر از ساقه در چه ارده ازازه بینده ایچکا برو ماشه گردید برو کنم نصاب <تصفيق> منو کن خب هم. سه نصابی، سه کتای بوده کارم عالی. برام نه، براش دیگه کاره. مجبور شدی که برید و قول نمره فسخش کنید. چه راهی تونم پیدا. آسان. همه نوره داشته، همه سهمنی. مچ کار کن. مچ کار میتونم بکنم. چه چاره ای میتونم بکنم؟ آقا کمر. کمر. بیبیم شما رو ببینه اگه ممکنه سه ده تا بیندی دوار دارم اگه نمیدی هم عقصمو چپ کردن هم شعرمو بله بله خیلی خواست آقا مجید ولی پایبندی به بعضی چیزها خیلی مهمتر از این خبری مهم است کاری که تو تو کتاب خونه کردی اسمش چی چی بود؟ چی بشون که دوزی نیست کی به من گفت همون دختر خانمی که کتاب رو برده بود همون کتابی که تو عوض کرده بودی یا انبال جان رو برگردون محکومان سواه کرد آقا کمال مست را سیرسی شرمنده میگونم شما سر روزید چقدر صدمه خوردید آقا کامال ما با مجید و آقا مجید در خونه کسی که چکوز و داشته بود حالا اونم متاسفانه چکو گول کردیم آقا کامال ما که گولم اینو شما رو ببران کنم ولی که شما سلاح بدونید این خشخونه رو میبروشم این خونه بهتره بهتر این که آقا این کاری است که شده است. شرمندگیش برای من، ناراحتیشم برای شما اگه حالا هر کاری میگویم، بگویم چا بکنم خاصی شدم دیگه چیکار میتونم بکنم یا چیزی بگو، یه راه جلوب هم بذار کاری خوبی کرد کتزیس دادی اگه به منم فروش بدهی حرف داری سری منم داب بزنی حرف داری اونم بزرگ شدست دیگه، مزبورم بهش نیرسته نمیدونم چیکار کنم به یه چیزی بگو آقا کمار یک رای جلوب هم بذار نگات هم به دیزی بدبختی ازی گرفت آنی شدم دیگه چقدر سکوت میکنی چقدر منو بسکوت آزار زار ده پس کن دیگه یه چیزی بگو یک رای جلوب خدا پا. Come on. Come <laughs> on. <laughs> بی کجا نیشم بی بی بینیم دیلیم <متحد> بدون گفتم به دلم مراد <متحد> شده است بی بینیم این شعرم این هست اکسی آقا ما جیده دونم اکسی تو رو چه تو که به قدی بوزیه شعور نداری؟ شو برو اکسو به چه دردم نخوری؟ خودت تو به دردم نخوری؟ این ها رو میخوام چکاب بلاشو برو چشمی جیده ها هیچ کدومه دون ندارم نه تو نه این ها هر چ می کشم دست تو می کشم. مرد شده ای حالا آقا شده فکر میکنیم مرد شده سیبیلا پشتله به سبز شده است مردون نیست که مرد ب به درد خونه برده دادیم و بهرست به در به زندگی بررسید من همینی رو زخم به نه که زخم بزنه نمک میری زه به سونه داون خوه من بازار ذره وجودم تو رو بزرگت کردم بزرگت کردممثل بهره برم بزرگت کردم که به دردم بخوری، بزرگت, بزرگت نکردم دام کو بسیم ح بچونهم به سودم و به سالم دونم بگم چقدره بکشم چقدر حرف بم. تقات خفطه کواری بکش رابز دست دو میگه من چه کردم که تو رو بزرگت کرده بی, بی جو من باید چقدر خففته کشان آخه من الان دست همه هم خففت کشان از دست شما از عزت و از عزت خوارم از عسام هم ندارم خففت کشم چقدر داد تو اون بدم آخه چه کاری خلافی بوزوک کردم که انقدر خففتو سرام میذاری آخه انسه شرم چاپ شده نیست که معلم نمیذاره بی بی جون چند هزار تومن چقدر بشه خب میدم میدم اس م میده اس کوچ که به قبلی موبا سرت نون بحش کنی ونی میتونی بده پس حالا <تصفح> نمیتونم بدم میرم گم میشم. میرم میمیرم ولی که به دنی نمیخورم، و غمخورارت نیستم و سرواردم اما خب میرم که ازم خبت نکشی میرم دیگم تو خونه ب می گردم نامدم که برگردم میرم یهجب که بدرد بخور باشم و قدمما بدونم آیا در ارجانان بشری یک شرای اضی یک آنصرره علی وجود, وجود دارد چرابیویچون وجود داره. جان جان مستوجب این همه عذاب نبود جامعیت بشری هرگز تاکش بود روی خوش ندیده بود از رنگ به رنگ دیگر رفته بود بله ببینتون بیبی بی ایناش تن داری باشند و مردمی دیگه داشتن بود یا جور دیگه باشن بله ای تو سرش زده بودن و قرضش هم ندونسته بودن شرعکش هم چوب شده ولی محلش نمیذارم ببینتون بی بله جان جان مستوجب این همه عذاب نبود اس نبوده. میفهمید نبودس ماجیت ماجیت گولی کشتم ببین آلوان تو دل ما اوش از دید دل جام سشا چون که بویش شوا منایو داد و کتابا روز و روزنما و مجلا و و چلوش کرده است از دست هر هفتتگی جلو دارش نیستم نصیحتش کن پدری کن دلالتش کن چیکارش کنام خدا چم روزا دار رفت است که دی این روزا حرف منم میشد همینم به تو رو هم خودی من واسادید تو کارو است کردی حالا شما رفنه. بزرگتری حرف شما رو بیشتر گوش میکنید صداش بزنید بگویید زندگی نیست داره خودت درست کن تا چون تو کوچه سری کوچه تا کوچه تو دکونی بار مردم ما آدم چی چون سرمم گندیدم که خونه با زندگی داره همیشه بهلوه. حالا با اس باش تا بنوستم حالا وقتن صحتش میکنی وقت باش حرف میزنی خیلی ممنون اول خدا بدم شما من دیگه رفتم خداحافظ اصلا اینجا کسی را همشتر بهش زیادی بیش ببو برخونده بچه صبحی زوبیه سری کاره باش باش ازمانواز چکار میکنی؟ ازمانواز <تصوح> صبحی ازر کاره یک داده دست ندارد بود، بیبی هان تو دست ندارد. نمی نووا وای میتونه شاهد باشه. اشاعه میتونه نووا باشه. خب منم نمی خواننده میتونه نووا باشه. نووا میتونه خواننده باشه. <تصفيق> شو با دل مشغولی فرق میکن. آرامش میگم شو با دل مشغولی فرق میکنه دو تای ها هر میشام دو تا نیست تونت هم با جیب بیرفت خواه بگنم شام و همین ام فقط به چه کسی خونه قرخ میکنه و میاد بیرون و میاد اینجا میشوند افتخار میکنه و بهتر که دیگه اصلا خونه نیا آقا افتخار میکنه اینجا اومده سه شسست خونه نمی آید؟ نیا چه بهتر؟ بعد شده دیگه آقا شده سیبیلات سفز شده است قرار خودت مرد شده اومده اینجا شسه افتخار هم کنی؟ هم عکس‌ها رو چاپ کردن هم شعرم خب بخون ببینم بخون مرغی استم کاوسمان شعر من است مرغی استم چاوسمان شعر من است در سفره من به جاوی نان شعر من است کامم تلخ بود تلخ ماکنون ما شیرین است زیرا او بر زبان شعر من است خیلی خوبه یه تنرمند تاقوبت زنده قلیم ازدت و گرمت چرا آمد آمد؟ مدام خونه جگر میخورد تنرمندی چقدر او نشناسن و خارد آننده باری چلا گفته این تو آینده خوبی داری بدین نم شما بدین من بدین نه نه. اختياری باشید. بخشید شما جایی می‌خواید درین؟ بفرم انچمن شعرا. می‌خاید بیاید؟ من؟ بله ولی خب یه بار رفتم رام ندادن. ان شاء راد. رام مونده. نکنه رام ندن دادس؟ رام می دن. تتمشین. رام میدن؟ رام مون. پس رام می او من چم او قدر خود غدر من قدر تو افتخار داریم که دعوت انجمن ما را پذیرفته و در جمع ما شرکت کردند استاد اعتزازی اگر چه نیستند اما آثار گرون بهایی خلق کرده که مثل اشعار شعراي بزرگ روح انسان را نوازش می‌دهد استاد اعتزازی این هنرمند بلندپایه مدت چند سال است که در کار هنر فعالیت داشته و در هنر برج کاری مکتب تازه به وجود آوردن و یکی از آثار نفیس خود را به من اهدا کردند که از ایشون بی نهایت متشکلی از استاد اتجازی تغازاندی تشریفی جای قدر صحبت کردن پرسانایی بذاتم که من که از تمام شعرا از تمام شعرا تشکر می‌کنم و سلامتی رو از خداوند متعال خواستارم، از پذیرایی که از من کردید. خیلی خیلی خوشحالم و واقعاً فراموش خواهم کرد. من حرفی ندارم. اما جوونان چه خیلی حرف دارن باید بهشون رسید آقا مجیدی هست که من باشون تازی کرد دوست شدم اینشون شاعر هستم یه شعری هم دارم ایشون تشهید این پشت این شعرشونه بگرم این شعر ها اکسی من چاب شدست و ببخشید این،, این شعر که مثل خون برک خواه من است مثل نفس حیات در نای من است بیشعر نمی‌توان به سر برد ولی این شعر چوزنجیر بر پای من است قمه فردا ز چشمم می چشم میبرد خواب وجودم میشود بیتاب بیتاب دلم مانند رودی پرخروش است مبادارود یابد رحم مردار دل من تک درختی نوجوان است هنر نهریست آنسو روان اگر آبش خورم گردم تناور اگر نه جامن من چناو توان تموم شد شد استاد لذت وردی قیده بکنی آقا مجید شعرتون خیلی دقشم هم با این سن ناسا آقا چی ماه زنده باشی حالا میخوام یه جایزه بهتون بدم یه موشک از اون موشک های قاره پیما خدمتتون نه منو چه دوست من سلام میگم که خیلی مهمه در We are the به گزارش واحد مرکزی خبر تا کنون بیش از هزار تون گندم از کشاورزان منطقه مبارک خریداری و به سیلوها هم شده است. امشب در مراسمی با حضور جمعی از بوذا، شعرا و هنرمندان در محل انجمن شاعران از هنرمند ارزنده استاد محمد اعتزازی تجلیل و قدردانی به عمل آمد. استاد اعتزازی در سخنان کوتاهی از برگزار برگزارکنندگان این مراسم تشکر کرد. سپس یک شاعر میهمان اشعار خود را خواند و در پایان استاد اکبر جمشیدی دبیر انجمن شاعران به سوابق شعرش نگاه کو اصلا تلویزیون نشوندن اشطور بختی به در هنر برجستکاری مکتبی تازه‌ای به دنیا آمده است در این مراسم استاد اعتباری از آثار لطیف خود را به انجمن شاعران کرد در پایان برنامه موسیقی خواند خاره چه تا نشود یه دننه نمته زیرا درخونه دم آخه نداری. من به شما جنب رو چرخ یه دننه لاد درخونه چه مکانی؟ بودی خدا فت خدا خدا فت وسطا وسطا وسطا سلام سلام وسطا شات تلویزیونا دیدین نه من کار میکردم شماره راه نشونداد منم یختش نشونداد ولی خب شما راه خیلی نشونداد چه فیلم برداری میکردن حال بله مستاد چی تو همو تحجی خیلی دم دست گذاشتم مستاد داردون نونی تازه بردم بفن سلامت بشید سادیا من به نیستیامی میخوام. خیر مامان. مientoمه دمی者 نانت اجتماوه قطبر واد Cherh Господی والن مسا بیا تا دست از این آلم بداریم بیا تا پای دل از گل براریم بیا تا برده تو منی کوی بخاری دیامالالهای در دام من و تامالالی یا که ja so the ne